و سال اوز عمر جاودان به خداوندا مرا آنده که آن به به شمشیرم زد و با کس نگفتم که راز دوست از دشمن آن به به داغ بندگی مردن بر این به جان او که از ملک جهان به خدا را از طبیب من بپرسید که آخر که شود این ناتوان به کلی کن پای مال سر ما گشت بود خاکش ز خون ارغوان به به خلدم دعوت ای زاهد مفرما که این سیب زنخ زان بوستان به دلا دائم گدای کوی او باش به حکم که دولت جاودان به جوانا سر متا و از پند پیران که رای پیر از بخت جوان به شبی می گفت چشم کس ندیده است مروارید گوشم در جهان بد اگر چه زنده رود آب حیات است ولی شیراز ما از اسفهان به سخن در دهان دوز شکر ولیکن گفته حافظ از آن بد